فصل سوام پانزده روز بعدی مثل برق گذشت دیگر خواب و خوراک همه قاطی شده بود همه مشغول خرید و دوخت و دوز و تدارک که مقدم عقد بودیم اولین چیزی که خریدیم آینه شمدان و قرآنی بزرگ بود یک آینه بزرگ طلایی با شمدانهای پای بلندی که پنج حباب تراشدار لب تلائی روی هر کدام داشت بعد حلقه نامزدی که بی نهایت دوستش داشتم. حلقه ظریف که یک نگینه برجسته داشت و حلقه محمد که آخر سر خودم انتخاب کردم. حلقه تقریبا پهن بود که رویش سه تا نگینه مورب داشت. لباسم را مادر مریم دخت و الحق خیلی زحمت کشید و من و زری و مریم همراه محتاب روی آن مرواری دوزی کردیم. یک لباس بلند سفید با آستین‌های پفی بود که از بالای آرنج چسبان میشد و به یک هفت روی دستم ختم میشد. سرشانه های لباس باز بود و بالاتنه اش از روی سینه تا کمر چسبان و از روی کمر دامن پفی بلندی بود که دنباله اش روی زمین می‌کشید. مروارید و منجوق و ملیله هایی روی لباس توی نور درخششی خیره کننده داشت. و من خودم شاید از همه بیشتر از تماشایش لذت میبردم. روزی که لباس تمام شد و پوشیدمش چقدر زری و مریم هل, هل کردند و سر و صدا راه انداختند مادرم و خانم جون قرق لذت و مهر نگاهم میکردند. و محترم خانم و فاطم خانم با تحسین و اشتیاق محترم خانوم با محبتی مادرانه و زده در حالی که چندین بار مرا بوسید زنجیر گردنش را به عنوان شاباش گردنم انداخت. و مادرم در حالی که قطر عشقی کنار چشمهایش لانه کرده بود قربان صدقه میرفت و اسپندود دود میکرد. زری که روی پاپند نبود التماس گفت مامای تو رو خدا بزار محمد را صدا کنم. ولی محترم خانوم گفت نه. باشه روز عقد یک دفعه زوغ کنه. راست هم می گفت. محمد آن روز واقعا زوغ کرد. روز عقد وقتی دنبالم آمد با آرایشگاه من با آرایش و لباس باز از خجالت و استراب سرم را پایین انداختم. اما سلام محمد چنان کشیده و بلند و تو با حیرت بود که ناخداگاه از آهنگ صدایش سر بلند کردم. خدایا آن چشمها چقدر زلال بود. اگر محبت رنگی داشته باشد و حس کردنی باشد، اگر محبت را دید و حس کرد و چشید، محبت بیشاعبه، محبت تو ام با شوق و خواستن، نه شهوانی را. چون محبتی که حتی تهمایه ای از شهوت داشته باشد، زلال نیست، پاک نیست و اینطور مستقیم با قلب آدم ارتباط پیدا نمی کند. من رنگ محبت را و زلالی بینهایت هایت اشق پاک را در چشمهای محمد دیدم و با نگاه او شناختم. من اگر بچه نبودم، اگر احمق نبودم، یا لاقل اگر همین بودم که حالا هستم تمام دنیا را با نگاه آن چشمها نباید عوض میکردم ولی کجا آدم قدر نعمتی را که دارد می خصلت خسلت آدمی است. به دنبال آنچه ندارد میدهد و آنچه دارد اصلا نمی بیند و به داشتنش مثل یک حق طبیعی عادت می کند. مثل دستش مثل نفس کشیدن مثل چشمهایش و مثل همه واقعیت های زندگی که چون همراه آدمند برایش عادی میشوند و بیزش مگر اینکه از دستشان بده وقتی چادر سفیدی که همراهش بود روی سرم انداخت آنقدر پایین آورد که دیگر جایی را نمیدیدم. با خنده پرسیدم من جایی رو نمی بینم چطوری راه بیام؟ او گفت تو صورت تو بپوشان، بردنت با من و دستم را گرفت. چه احساس آرامشی از گرمای دستایش که برای اولین بار حسشان می کردم یکی به جانم ریخت. توی دست‌های مردانه و قوی او دستهای من مثل دست یک بچه بود و او هم درست مثل اینکه که بچه را راه ببرد مرا هم رو خودش می برد. وقتی یاد آن لحظه ها می بی اختیار پر از عشق می شود. از کنار قشنگ ترین ساعت های عمرم که دیگر هیچ وقت بر نمی گردد و قدرشان را ندانستم خواب و گیج گذشتم تا امروز حسرتشان بیچاره هم کند دم خانه من خیلی شلوغ بود خانه ما مجلس زنانه بود و خانه آنها مردانه همراه محمد که کمکم می کرد وارد خانه شدم و توی دود اسپند و هل, هل و سر و صدای زیاد گم شدم آنقدر دور و برم شلوق بود و چشم ها و صورتهای خندان شاد آشنا و ناشنا دورم را گرفته بود که گیج گیج مثل آدم‌های توی خواب باورم نمی‌شد، این منم توی این لباس و کنار محمد و نشسته بر سفره عقد آقا آمد و قرآن را به دست من و محمد دادند وقتی خطبه را می خاله آرامی سر در گوشم گذاشت و گفت تا سهبار نخونده بله نگی من که چشمم دنبال خانم جون و مادرم بود چه حال عجیبی داشتم انگار تازه باورم می دارم شوهر میکنم و با این کلمات زندگیم عوض می شود و به قول خانم جون همه کس من میشه محمد یک آن فکر کردم اگر محمد عوض شود اگر بد اخلاق شود اگر دیگر دوستم نداشته باشد یا اگر اصلا خودم پشیمون شوم چه؟ مثل کسی که دارد از جایی پرت می شود دلم می خواست از کسی کمک بخواهم ناخداغاه دست محمد را از زیر قرآن محکم گرفتم می خواستم به کسی پناه ببرم باز ترسیده بودم محمد آرام توی گوشم گفت چی شده؟ فقط برگشتم و نگاهش کردم نمیدانم چه حس کرد که تنها آهسته هایم را فشار داد و من قلبم آرام گرفت. خاله یواش بازویم را فشار داد که یعنی دفعه سومه و من گفتم بله. اما محمد همان بار اول محکم و بلند بله گفت و صدایش توی هلهله و شلوغی زنها گم شد. بدون اینکه متوجه باشم دست محمد را رها نمیکردم. خانم جون به هوای روبوسی توی گوشم گفت ننه انقدر خودیتو دستش دستشو فل کن مردم حرف در میارن و من متعجب به دستهایم نگاه کردم کمی فاصله گرفتم ولی دستش را رها نکردم دیگر مهم نبود با خود گفتم بزار حرف در بیارن از مراسم عقدم هر چه به یاد دارم انگار پشت مهبنان است قم و خیش های محمد و خودم قریبه و آشنا صورت های مهربان و خندان و هدیه های مختلف که دست و انگشت ها و گردنم را پر کرده بود همه مثل فیلمی توند که جزئیاتش یادم نباشد توی ذهنم مبهم و تار است برعکس شب عقد را به وضوح به خاطر دارم انگار همین دیشب بود وقتی مهمان ها رفتند حاج و محترم خانوم صورت های ما را بوسیدند. بعد حاج رو به مادرم و خانوم جون و آقاجون جون گفت با اجازه شما و دست مرا توی دست محمد گذاشت و گفت ایشاله که شب عروسیتون هم خودم دست به دستتون بدم. دعا می کنم که به پای هم پیر بشین و من تا زنده هم یک دو جین هایم را ببینم. بعد سرش را نزدیک آورد و گفت فقط یک حرف مونده که خانون جون از قول ما بهتون میگه و ایشالله که رو سفیدمون کنین و در حالی که انگار بیشتر منظورش محمد باشد پرسید باشه آقا محمد شرمگین گفت چشم و خم شد که دسته ها جاقا را ببوسد ولی ها نگذاشت محمد را محکم در آغوش گرفت صورتش را بوسید و باز دعای خیری کرد و کنار رفت تا محترم خانوم و سایرین هم به نوبت از ما خدا کنند. نمیدانم چرا وقتی آقا جون و مادرم جلو آمدند و آقا جون خواست صورتم را به زدم زیر گریه. هم خوشحال بودم، هم قمگین. دلم میخواست از پدر و مادر مهربانم تشکر کنم. با اینکه قرار نبود از آنها جدا شوم، مثل کسانی که سفری دور در پیش دارند، دلتنگ شده بودم. آقاجون هم در حالی که بغز کرده بود گونه ها و پیشانی را بوسید. آرزوی خوشبختی کرد و بعد از اینکه صورت محمد را هم بوسید دوباره دست مرا توی دست محمد گذاشت و گفت فکر کن من فقط یک چشم دارم که اونم بعد از این دست شما سپردم. و با سرعت رویش را برگرداند و از اتاق بیرون رفت و من هیچ وقت نفهمیدم که آن شب آقا جون گریه کرد یا نه. مادرم حتی نتوانست حرف بزند. در میان و لبخند چندین بار مرا بوسید و بعد محمد را و فوری از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه طول کشید تا خانم جون با شوخیهایش و امیر و زری و بقیه با حرفهایشان توانستند جلوی گریم را بگیرند. آنها هم سرانجام خداحافظی کردند و رفتند. آن وقت بود که خانم جون در اتاق عقد را بست و گفت محمد آقا، من که بچه هیچی شما مثل امیر بودی و از امروز دیگه رسمن شدی پسر ما بعد همانطور که دستش را روی دست ما می گذاشت، گفت امیدوارم به حق همین شب عزیز خیر هم دیگر رو ببینین و سفید بخت باشین اینم از من پیرزن داشته باشین و هیچ وقت نذارین روتون تو روی هم باز بشه حرمت هم رو نگه دارین. تا همیشه مثل الان برای هم عزیز باشیم مثل من برای اون خدا بیامرز بعد از خنده‌ی هر سیمون خانم جون صحبتش را اینطور ادامه داد محمد آقا گفتم که شما برای ما مثل امیر عزیزی اما مادر بین قوم و خیشای ما رست نیست دختر و مدت طولانی عقد کرده نگه منتها حساب شما دیگه جدا بود حالا بزرگ از من پر روتر پیدا نکردن که این حرف یعنی این شرط رو اول به شما بعد به دختر خودمون بگم پسرم مهناز دیگه زن قانونی و شرعی شماست ولی مادر از اونجا که قرار دو سال دیگه عروسی کنین یعنی میخواستم بگم چند لحظه ای مکس کرد بعد صحبتش را ادامه داد آخه میدونی مادر جون با ساکت شد من متحیر بانده بودم که خانم جون چرا اینقدر حاشیه می رود ولی محمد طوری سرش را به زیر انداخته بود که انگار میفهمید و خجالت می کشید. دوباره خانم جون گفت مادر آخه توی عقد کردگی اگه یعنی میخواستم بگم ایشالله هر وقت عروسی کردین و زنت رو بردی خونه خودت خانوم جون با ساکت شد گل شده بود. دوباره خواست شروع کند که محمد سرش را بلند کرد. مثل این که میخواست به خانم جون کمک کند. خیلی آهسته گفت. بله خانم جون. متوجه شدم. چشم. حتما من هاج و واج محمد و خانم جون را نگاه میکردم و سر از حرفهای بی سر و ته آنها در نمیآوردم. ولی خانم جون نفس راحتی کشید و گفت. آخش، خدا عمرت بده مادر، ببین چه کارهایی به منگی سفید واگذار میکنن و و بعد با زحمت از جا بلند شد و گفت پس من دیگه خاطر جمع از طرف شما قول بدم و محمد که جواب داد مطمئن باشین خانم جون با همان لحن شیرینش گفت مطمئن که اگه نبودیم مادر بچه و نمیسپردیم سپردیم دست شما حاجاغام گفت که از پسر من خاطر جمع باشیم منتقه هیچ کس رو از من رو تر پیدا نکرده. و بعد هم خنده کنان صورتهای ما را بوسید و به خدا سپرد رفت. من که هنوز سر در نیو ورده بودم با تعجب به محمد گفتم. شما فهمیدین خانم جون چی می گفت؟ محمد سرش را بلند کرد. صورتش هنوز سرخی شرم داشت. با تحسین و محبت نگاهم کرد خندید و سرش را به علامت مثبت بودن جوابم تکان داد و وقتی پرسش را توی نگاهم دید گفت تو هم میفهمی خانوم مهناز کاشانی بعد دستم را گرفت و کنار خودش نشاند و همونطور که دستم توی دستش بود با من حرف زد آن شب تا سبیده صبح توی اتاق عقد نشستیم و حرف و من چقدر زود ترسم از محمد ریخت احساس میکردم این محمد با آن محمد برادر زری که در فکر من بود چقدر فرق دارد محمد حرف میزد و من مشتاق گوش می ددم. آن شب به من گفت که مرا از وقتی عقلش رسیده دوست داشته می گفت اوایل وقتی بچه بودم فقط دوست داشتم مواظبت باشم اما نمیدونستم چرا؟ بعد کم کم که بزرگتر شدم و تو بزرگتر شدی فهمیدم چرا برایم از خاطرههایش میگفت و من ذوق زده و با شور و شوق گوش میدادم از روزهایی میگفت که اصلا خودم به یاد نداشتم و چقدر لذت میبردم وقتی احساسش را نسبت به خودم از زبان او میشنیدم آن شب محمد بود و صدای گرم و خوش آهنگ و حرفهای شیرینش و من مبهوت آن همه عشق بودم که یکی بار قلبم را در خود قرق می کرد. کاشا لحظه ها برمی گشت. لحظه های خوشمختی بی انتها و بینظیری که برای ابد گذشت. و شد یک رویای دور برای دل حسرت زده من. صدای از آن که بلند شد هیچ کدام باور نمی شد. من با حیرت در حالی که با عجل از جایم بلند می شدم گفتم. وای محمد صبح شد دیگر راحت میگفتم محمد برادر زری از من دور شده بود محمد شوهرم بود که کنارم بود و چقدر دوستش داشتم محمد گفت کجا میری؟ برم هم عوض کنم الان همه بیدار میشن. صبح سب مهناز برگشتم بذار یه خورده دیگه توی لباست ببینمت ات بعد برو. خندم پرسیدم. از عصر تا حالا ندیدی؟ نه. تا حالا فقط صورتتو نگاه می با تنه گفتم. صورتمم توی این همه سال ندیده بودی؟ صورت مهناز رو چرا؟ صورت زن خودمو نه؟ با دستهایم دامنم را گرفتم که از جلوی پایم کنار برود. گفت خانم کوچولو نخوری زمین؟ خندان دویدم. چقدر مهرش در دلم جا باز کرده بود. پس خانم جون راست میگفت گفت رو که میخونن آدم آشق و میشه وارد اتاقم که شدم نگاهم به خودم توی آینه افتاد. به نظرم آمد چقدر قیافه هم عوض شده و فکر کردم راستی خیلی خوشگل شدم. چند لحظه محو تماشای خودم شدم ولی صدای در اتاق خانم جون که آمد دوباره یاد محمد افتادم با عجله هم را عوض کردم ته مانده های آرایش صورتم را هم با پنبه پاک کردم احساس کردم موهایم از ریشه درد گرفته سنجاق های موهایم را هم باز کردم و با زحمت بالاخره شانه شان کردم بدون آرایش چقدر صورتم کم سن و سال تر بود وقتی برگشتم دیدم محمد سرش را به پشتی تکیه داده و چشمهایش را بسته به نظر میآمد در آرامش کامل و راحت خوابیده. فکر کردم از خستگی خوابش برده. پاورچین نستیک شدم. بعد خم شدم تا از کنار دستش کتش را بردارم و بیاندازم رویش. با این کتابستان بود ولی نسیم صبح هوای اتاق را کاملا خنک کرده بود همین که خواستم کت را بیاندازم رویش چشمهایش نیمه باز شد سرش را از پشتی برداشت و خندید نمیدانم چرا؟ به خاطر گرمی لبخندش بود یا محبت بینهایت چشمهایش که به من میخندید تمام وجودم گرم میشد ببخشید بیدارت کردم فکرم خوابی خواستم سردت نشه. محمد انگار اصلاً حرفم را نشنیده باشد صاف نشست و همونطور که خیره نگاهم میکرد گفت چقدر خوشگلتر شدی؟ حیف صورت به این قشنگی نیست که رویش نقاشی میکنند دلیت میاد؟ معلومه که اونطوری آدم خوشگلتره نه، هیچ هم اینطور نیست اگه قرار من خوشم بیاد و دوست داشته باشم که من صورت تو اینطوری دوست دارم ولی یکی غیر از اینه که هیچ حرفش تمام شد و نگاهمان توی چشم‌های هم ماند مستقیم که توی چشم‌هایم نگاه می‌کرد قلبم فرو می‌ریخت انگار جریان خون توی تنم سریع‌تر می‌شد غور گر می‌گرفتم دوباره احساس کردم گرمم شده موهایم را با هایم زدم پشت گوشهایم و همانطور که کتش توی بغلم بود گفتم درم برایت جا نماز بیارم نمازت رو بخونی نه یه خورده دیگه پیشم بمون برای نماز میرم خونه خودمون بی اختیار یک دفعه گفتم نه نه؟ چرا؟ نمیدانستم چه بگویم دلم نمیخواست برود عجیب بود در عرض یک شب همه چیز چقدر فرق کرده بود یا من فرق کرده بودم انگار چیزی مثل آهن رو با قوی مرا به طرفش میکشید. حسی که نمیتوان بیانش کرد. در مانده فقط نگاهش کردم. دوباره پرسید. محناز؟ نه چی؟ نرو؟ چرا؟ مگه نماز رو همینجا نمیشه خوند؟ با خنده گفت. نه. تو که باشی حواسم پرت میشه. هم هرسم گرفت که چرا برای او سخت نیست که از من دور شود هم خواستم خود را لوس کنم رویم را برگرداندم و گفتم باشه، اگه اینطوریه من میرم که حواستون پرت نشه خودم هم باورم نمیشدیم این منم اینقدر راحت مثل اینکه سالها زن شوهریم سر به سر محمد میگذاشتم صدایم زد مهناز شنیدم ولی جواب ندادم و همونطور به سمت در رفتم دوباره که صدایم زد همزمان بازویم را هم گرفت و نگه هم داشت دوباره صدایم زد نمیدانم چرا صدایم که میزد تمام وجودم به طرفش پر میکشید. با زحمت به روی خود نیاوردم به طرف خودش برم گرداند سرم را بلند نکردم مهناز دستش را زیر چانه ام برد و صورتم را بالا گرفت. رسم شما این طوریه که مهمونو با قرض کردن نگه دارن؟ در حالی که هنوز به جای چشمهایش به گردنش نگاه می گفتم. نه، مهمونی که نخواد پیش ما بمونه به زور نگه نمیداریم. هیچ نگفت، ولی سنگینی نگاهش را حس می کردم. بلاخره طاقت نیوبردم. نگاهش کردم ببینم چرا ساکت است که باز نگاهم به چشم‌هایش که نزدیک صورتم بود افتاد چند ثانیه با دقت نگاهم کرد بعد ناگهان سرش را پایین آورد وقتی سرش را دوباره بالا گرفت نگاهش چنان ملتهب و سرشار از محبتی ناب و سوزان بود که نفسم به شماره افتاد شاید هیچکس باور نکند ولی با اینکه سن هر دومان کم بود با اینکه محمد در اوج جوانی بود ولی نه تماس دستانش شهوانی بود نه حالت نگاهش احساس میکردی یک دنیا محبت با ظرافت در آغوشت گرفته مثل کسی که گرانبهاترین شیء دنیا را در آغوش بگیرد چیزی که مرا بینهایت شیفته میکرد به اینکه حتی خودم هم بفهمم همین بود احساس هایی هست که گفتنی نیست کلام و توصیف از بیانشان عاجز است. چون این حالتها حس کردنی است، نگفتنی و شاید به همین دلیل آدم از بازگویش در میمانند. ولی این را فهمیدم که منظور خدا از حقیقت آرامشی که گفته درباره جفتها قرار میدهد همین آرامش بینهایت است. وصل جسمانی براوردن یک غریزه است مکمل زندگی است نه همه هدف آن چه تلخست است که بعضی آدمها آن حقیقت را گم می کنند و نابترین نعمتهای خداوند را به اشتباه ناچشیده از دست میدهند میشود همیشه آشق بود همیشه حتی از تماس دست همدیگر لذت برد اگر شهوت نهایت خاص آدمی نباشد ولی افسوس